روباه هیلگر روزی بود و روزگاری بود یک گرگ درنده بود که در صحرایی زندگی میکرد و هر حیوانی را که در آن بیابان میدید و زورش میرسید میگرفت و از هم میدرید و میخورد یک روز هرچه این طرف و آن طرف توی کوه و صحرا جستجو کرد هیچ شکاری پیدا نکرد و از آنجا که خیلی گرسنه شده بود فکر کرد که خوب است برود توی آبادی و مرقی خروسی چیزی بگیرد ولی از سگها میترسید و جرأت نمیکرد به آبادی نزدیک شود همینطور که خسته و گرسنه فکر میکرد و آرام آرام راه میرفت، یک وقت دید کمی دورتر از آنجا خرگوشی در کنار بطه خاری به خواب رفته است گرگ خیلی خوشحال شد و با خودش فکر کرد اگر بتوانم طوری پیش بروم که خرگوش از صدای پایم بیدار نشود و فرار نکند خوب لغم و تعمیگی گیر آوردم. اما خرگوش ها با اینکه همیشه خواب آلود هستند و همین خواب آنها را به خطر می اندازد در عوض گوش تیز و پای گریز خوبی دارند و اگر زود بیدار شود و پا به فرار بگذارد دیگر مشکل است به او برسم پس پاورچین پاورچین پیش رفت و بالای سر خرگوش ایستاد آن وقت به خرگوش گفت آهای چقدر میخوابی؟ مگر نمی که از خوابیدن کسی به جایی نمیرسد. بعد به مسخره گفت چطوری آخرگوش؟ هیچ احوال ما رو نمی پرسی آه؟ خرگوش بیچاری که با وحشت از خواب پریده بود فهمید که بد گیر افتاده و دیگر نمیتواند فرار کند و اگر حواس خودش را جمع نکند و راهی پیدا نکند باید آماده مرگ باشد این بود که سعی کرد آرام باشد و بعد با خونسردی گفت اختیار دارید من همیشه جویای حال شما هستم هرچه باشد شما سرور و بزرگ این صحرا هستید و ما باید همیشه دعاگو باشیم گرگ میان حرفش پرید و گفت بس است بدبخت بیچاره چاپلوسی و زبان بازی را بگذار کنار که من از این چیزها زیاد دیدم و هر کس دومش لایه تله گیر می‌افتاد از این حرف ها می میزند. راستش این است که من گرسنهام و می‌خواهم تو را بخورم بقیه حرفها هم چرند است خرگوش که فهمید با تعارف و خوشامدگویی آمدگویی نمی تواند گرگ گرسنه را آرام کند فکر کرد که خوب است او را به تمع بیندازم و حیله دیگری به کار ببرم به همین جهت جواب داد نه من چاپلوسی نمی کنم بلکه به شما واقعا ارادت دارم و همین الان خدمتگذاری خود را ثابت می کنم گرگ پرسید چه خدمتی می توانی بکنی؟ چطور ثابت می کنی؟ خرگوش گفت راستش این است که من میدانم در چنگ تو اسیر رو گرفتارم و راه فرار ندارم تو هم گرسته ای و هر لحظه بخواهی می توانی مرا پاره کنی و بخوری اینطور نیست؟ گرگ گفت چرا همینطور است؟ خرگوش گفت بسیار خب پس چون من نمیتوانم فرار کنم برای اینکه خودم زنده بمانم باید یک خوراک بهتر برای تو فراهم کنم و آن این است که من در این نزدیکی یک روباه سراغ دارم که سه برابر من گوشت و چربی دارد و از بس چاق نمی نمیتواند راه برود و گوشت بدنش چنان لطیف و خوشمزه است که تمام حیوانات درنده آرزوی خوردنش را دارند ولی چون خیلی زیرک است کسی نمیتواند او را به چنگ بیاورد الا اگر تو حاضر باشی در کشتن من عجله نکنی من تو را به در خانه روباه می‌برم و با حیله‌ای که میدانم او را بیرون میآورم آن وقت تو او را میگیری و میخوری و اگر خوب بود و راضی شدی که هیچ و اگر سیر نشودی خودم در اختیار تو هستم گرگ که دید واقعا خرگوش خیلی لاغر است به تما افتاد و با خود گفت راست میگوید اگر روباه چاق و چله به دست بیاید که بهتر است وگرنه چند دقیقه دیگر خودش را میخورم پس به خرگوش گفت بسیار خوب راه بیفت اما اگر دروغ گفته باشی به زاری زارت که تکت میکنم آنها راه افتادند و خرگوش پشت تپه جلوی در خانه روباه ایستاد و گرگ را منتظر گذاشت و خودش وارد سوراخ شد. و این خرگوش از مدتها پیش درباره روباه حسودی می کرد و کینه داشت و میخواست او را اذیت کند و به روی خود نمیآورد. در ظاهر با هم سلام علیک داشتند و رفیق بودند. خرگوش وارد منزل روباه شد و گفت: «سلام آقای روباه حال شما چطور است؟ رو با هم به گرمی جواب سلامش را داد و تعظیم کرد و گفت و چه خوب آمدی صفا کردی چه عجب شد که یاد ما کردی بفرمایید بفرمایید خرگوش گفت دوست عزیز مدتی است از دوری تو دلتنگ شده بودم و آرزوی دیدارت را داشتم ولی نمیتوانستم خدمت برسم امروز که سعادت یاری کرد یکی از دوستان قدیم ما هم که مهمان من بود آوازی هنر و فضل و کمال و علم و دانش شما را شنیده بود از من خواهش کرد شما را با هم آشنا کنم اینک ایشان با من همراه است و دم در خانه منتظر است حالا اگر اجازه ملاقات می‌فرمایید فرمایید چرف یاب شویم اگر هم مانعی هست ممکن است در بیرون خانه با هم آشنا شوید و قدری در هوای آزاد قدم بزنیم و صحبت کنیم چون که این شخص محترم از دور به شما ارادت دارد و با تمام وجود مشتاق دیدار شماست روبا که خودش از آن هیل بازهای درجه اول بود از وضع حرف زدن خرگوش و از این همه آب و تابها. فهمید که یک نیمکاسهی زیر کاسه هست وگرنه دید و بازدید ساده که این همه تعارف و حرف لازم ندارد. این بود که در جواب چند کلمه تارف کرد و گفت اختیار دارید. شما با حرف خوب خودتان مرا شرمنده می بعد ناگهان گفت آه, اه، یادم رفت ظرف شیر برنج را از روی آتش بردارم اجازه می دهید؟ و زود دوید پشت پرده و از پنجره نگاه کرد که ببیند مهمان آقای خرگوش که پشت در خانه است کیست از این طرف خرگوش خوشحال بود و فکر می کرد که چه خوب شد علاوه بر اینکه گرگ را راضی می کنم و خودم خلاص می شوم از روباه هم انتقام می گیرم تازه بعد شیر برنج مفصلی هم حاضر و آماده است که بخورم از طرف دیگر روباه از پنجره نگاه کرد همین که گرگ را دم دردید فهمید که این زبان بازی های خرگوش برای این است که او را به چنگ گرگ بیاندازد این بود که در دل خود گفت فهمیدم حالا از همان آشی که برای من پخته اید به خودتان قضا خواهم داد سعی کرد بیافه خندان و خوشحال به خود بگیرد بعد هم برگشت و به خرگوش گفت خیلی ببخشید که شما را تنها گذاشتم ظرف شیر برنج روی آتش بود و ترسیدم بسوزد آن وقت دم تکان داد و گفت دوست عزیز من مدتهاست در انتظار دیدار تو بودم و از آشنایی با مهمان محترم تو هم خیلی خوشحال میشوم میترسم اینطور بیاحترامی شود خواهش میکنم چند دقیقه دم در با او حرف بزنی که از تنهایی افسرده نشود تا من خانه را جارو بزنم و فرشی که لایق مهمان باشد پهن کنم و ظرف شیرینی را آماده کنم و شما را صدا بزنم. زنم. خرگوش که دید روبا حرفهایش رو باور کرده خوشحالتر شد و در جواب گفت رفیق عزیز مهمان ما شخص خیلی مهربان خودمانی است اما حالا که شما میخوایید محترمان پذیرایی کنید اختیار با شماست و ما دم در خانه قدم میزنیم تا مطابق میل خودتان خانه را مرتب کنید. بعد خرگوش آمد پیش گرگ و جریان را به او خبر داد. و برای اینکه خوشخدمتی خود را به گرگ ثابت کند و نجات خود را حتمی کرده باشد باز شروع کرد از چاقی و خوبی گوشت روباه تعریف کردند و گفت تازه بعد از این یکی چند چندتا روباه و شغال دیگر هم که یکی از یکی چاقتر هستند سراغ دارم و سرگرم گفتگو شدند اما روباه که خیلی مکر و هیله داشت از مدتی پیش برای روز مبادا پیشبینی کرده و جلوی در اتاق یک کنده بود و روی آن را تخته گذاشته بود و فرش ای روی آن انداخته بود و پشت خانهاش هم یکی در دیگر درست کرده بود که فقط خودش از آن خبر داشت. این بود که زود تخته روی چاه را برداشت و با ترکه های نازک روی چاه را پوشاند و فرش نازک و خوشرنگی روی آن انداخت طوری که اگر کسی پایش را روی آن بگذارد در چاه فرو رود آن وقت پرده زیبایی هم آویزان کرد و صورت ظاهر خانه را آماده پذیرایی نشان داد بعد خودش رفت کنج خانه تا از طرف دیگر آماده فرار باشد و آن وقت صدا زد آقای خرگوش خیلی معذرت میخواهم که شما را معطل کردم خواهش میکنم با مهمان عزیز بفرمایید و تشریف بیاورید خرگوش و گرگ با خوشحالی تمام وارد شدند و همین که پای خود را روی سرپوش چاه گذاشتن ترکه ها شکست و هر دو در چاه افتادند روبا هم از طرف دیگر خانه آمد بیرون تا گرد و خاک تمام شد بعد برگشت و دید که گرگ در پایین چاه با خرگوش دعوا کرده و به خیال این که این کار هم از حیله خرگوش بوده خرگوش را از هم پاره پاره کرده و خودش هم در ته چاه مانده. آن وقت روبا سرش را جلو آورد و فریاد کشید آقای خرگوش آقای خرگوش گرگ از ته چاه جواب داد خرگوش بدجنس رو به سزای خودش رسوندم حالا تناب بیاورید تا من بیرون بیایم روبا شروع کرد به قهقا خندیدن و گفت <تصفيق> بله واقعا خرگوش به سزای خودش رسید زیرا کسی که به دوست قدیم خود خیانت کند و با مک رو هیله بخواهد او را به دست دشمن بسپارد سزایش همین است ولی تو همانقدر نادانی که فریب خرگوش به این زعیفی را میخوری و تازه وقتی به نام مهمان وارد خانه مردم میشوی میخواهی خون مردم را بخوری پس سزایت همین سنگ است روبا سنگ بزرگی از بالای چاه بر سر گرگ زد و حیوانات صحرا را از وجود گرگ ظالم آسوده کرد